و درود خدمت خانمه ها و آویان. به نام خدا و بایدوزه بزرگان و دوستان مصنوی رو از همون زود هفته گذشته گرد کردیم دنبال میکنیم چون رسید از راه اون مرد غریب اندر آوردش به پیش شه طبیع سوی شاهنشاه بردندش به ناز تا بسوزد بر سر شم تراز شاه دید او را بسی تعظیم کرد مخزن زر را به دود تسلیم کرد پس حکیمش گفت چی سلطان مه اون چنیزش را به دین خاجه بده تا چنیزش در مثالش خوش شود آب وصلش دفع اون آتش شود شه بدو بخشید اون محروی را جفت شد هر دو صحبت جوی را مدت ماه می کام تا به صحت آمد اون دختر تمام بعد از آن از بهرو او شربت بساخت تا بخورد و پیش دختر می گداخت. چون زرنزوری جمال او نماند دان دختر در وبال او نماند چون چه زشت و ناخش و رخ زرد شد اندشنده در دل او سرد شد عشق هایی که از په رنگی بود اشک نبود او بد ننجی بود کاش کن هم ننج بودی یک سری تا نرفتی بر ویون بدداری خوندوی در چشم همچن جوی او دشمن وی آمد روی او دشمن تابوس آمد پر او ای بسی شهرا بکشته فر او گفت من اون آهو هم که ناف من ریخت این سیاد خونه صاف من ای من اون روباه سهرا که از چمین سر بریدندش برای پوستین ای منون پیلی که زخم پیلبان ریخت خونم از برای استخوان، آن که پی پی مادون من می نداند که نه خونم خون من بر من هست این روز و فردا و بروه است خونتون من چست تونین زایه چه هست که ست به اینجا رسیده بود که طبیب با یک سری انتحانات در مرض این چنیز را دید چنیز آشق یک زرجر سمرگندیه این چشم شد شاه را بادار که آدم بفرستد دنبال این زرجر، این از سمرقند پیداش بکنند نمیگه این شاه کدا بود معین نیست کار داشت، نیست ولی جای زرجر معلوم سمرقند چه شهره بود به زیبارویان و این زرجر زیباروی در اونجا به شغل زرجری مشهور بود یعنی جز به صناعی جای کارای زیبا و ظریف و قشند یعنی پچه روی اون زیبایی زیبای های ظاهری چه زرجر اونجا مشهور بوده زن و داشته یا چنیز از اونجا گزارش افتاده چنیز عاشق این زرجر شده خب فرستادن دنبال اون زرجر زرجر را با این هیله که شاه از هنر تو چیزها شنیده یه زرجر باشی رازم داره یه تازه خیلی مجلل برای تشریفات خیلی مثلا استثنائی لازم داره بسازه و گفتن چه فقط از دست تو چاخته است و اینا از اونجا چندان به هر حال و گفتن پول میدیم و مقام میدیم و اینا می فورا دیجه زن و بچهش را فراموش شد از اونجا رافت داد با اینا آمد تا بیش شاه طبیب اینا آورد به شاه معرفی کرد شاه این اول این زر... زرادخانه چه می‌جنین جنزینه‌اش را چه؟ تمام طلاها و اونا و اونجا امبارش دارده بود، این هم معرفی چهر چلید و داد دسته و بعدم خب مطابق تجویز اون طبیب چنیزش را دادن به این آدم به این، به این خب ببینید در کسی خدمتتون تو نرچردم مولانا خودش رمزگشایی نکرده از این قصه تا این جافق از رنزگشایی چرده چه این در حقیقت حسب حال خود من و رمزگشایی دومش هم اینه که در وسط قصه به مسئله به شمس تبریز پرداخته و عشق خود با شمس تبریزی و این دوتا ما دوتا چلیده کوچش دستمون هست ولی خیلی رمزگشایی نکرده که قضایا از چه قراره از قدیمی ترین شارحین مصنوی خارزمی که شاید اولین شرح مفصل مصنویه که متاسفانه تمام نشده در اون جلسات اول خدمتون اینا را گزارش کردم که خارزمی سه دفتر را توانسته شرح بکنه و سخت تحت تاثیر ابن عربیه و بعد این کارش رو تعطیل کرده رفته اصلا شرح فسوس ابن رو نوشته. در حال ایشون در شرحش میگوید میشاید چه پادشاه عبارت از روح انسانی باشد و چنیجه عبارت از نفس زرجر عبارت از دنیا باشد با اون الهی عبارت بود از روح القدس اینو قدیم ترین شارحش گفته اما جدیدترین شارهه به اصلاح م... چه قابل توضعه چون هرچکی خوب شرحی نشته دیگه ولی اون جدیدترین شارههی که به برها حرفش را باید توجه شد سبزواری حکیم سبزواری این من مرحوم فروزانفر نقل کرده از شرح سبزواری چه میگوید شادهان مصنبی این حکایت را به صبر مختلف تعویل کردند بدین گونه عقل شاه است و نفس کنیزت معشوقه آن و بال تن معشوق نفس است و معالجه نفس که معلول علت‌هاست یعنی مریضه بر دست طبیب حقیقی که مرشد کامل است صورت می‌جیرد یا این یه دیگری اینه که یا شاه قبل جزئی است و تنیت نفس جزئی و در دنیا و حشیم عقل کلی و موالته اطب و ادله جلالیه خطابیه خب این شریسه فروزن فرز گونه اچیم <تصفيق> آورده خود روزون پر هم نظری نداده <تصفيق> اما به نظر گاثره ما مسئله خیلی ساده تر از این حرف هاستی اینا همونزور در خود می پیتن. خیلی روشنه که از یه ببینید مسئله شما باید در بکرانده <تصفيق> در اون زمینه مقدماتی که پیش از این قصه آورد یعنی شروع اون نینامه یا اشکنامه اون ابیات اولی مولوی وقتی اونها را میخونید بعد این قصه میاره معلومه که این در زیل اونها آورده و اون مصلابه مسئله مسئله ایست چه اشک تنها چیزیست که ما را به خداوند پیون میده و اون از طرف خداوند از عنایت و عشق از طرف خداوند از این انایت شامل حال انسانی میشه و میچشد این را به سوی خودش اون تفصیل دیگه عرض نمی کنم برای اینکه به تفصیل در دو جلسه اول این بحثها رو این موضوع صحبت کردیم بعد از اون میگوید این گسته رو میاره بنابراین در اینجا شاه به نظر بنده شاه همون مالک الملک ملچی و, و شاه همون کسیش چه چنیزت انسانه چنیزت نماد انسانه و خدا انسان رو دوست داره و میخواد انسان هم خدا را دوست داشته باشه یه بوم و یه بونا این است دو طرفی میخواد بشه ولی این چنیزت دو تار نفس دو تار عشق صوری عشق مادی عشق جسمانی عشق مجازی به هر لوعه چی بخواهد تجي چنیزت نماد نفسه این زرجر نماد نفسه چنیزت مریضه سراچ جرف مبتلایه عشقه هوای اون نفسه پس زرجر نفسه نماد نفسه چنیزت نماد انسان شاه که هم ملچ دنیا داره و هم ملش دین نماد خداونده اون طبیب الهی نماد اولیا هستند و انبیاد این مرض این مریض بیمارها را تشخیص می دهند و تدویز می کنند با اون احتیاطکاری ها چه شما می بیرید و خلاص شدن از دست نفس هم به این آسانی نیست خیلی باید با رفق و مدارا عمل کرد یهو نمیشه رابطه را قطع کرد بارف با مدارا چه شما می‌بینید؟ مولانا چطور؟ این به نظر من خیلی ساده است و خیلی روشنه در این باره و تعجب می‌کنم چه چه رفتن در این پیت و همها خودشون را گمه کردن حالا شما وقتی ما می‌خونیم تمام می‌کنیم خودتون هم روش تعمل بکنید و فچ بکنید ببینید چه آیا جزین می‌تونه باشه می فرماید که چون رسید از راه اون مرد غریب اون زرجرد چه نماد نفس گفتی و تا نفس گشتنی تا نفس از دست نفس خلاص نشه اون انسان اون چنیز چه نماد انسانه اون انسان نمیتونه تونه متوازه اشک معنوی بشه تا از این شر این عشقی چه دو تا شده عشق نفسانی چه دو تا شده تو الان اون چنیزت بیمار دو تا عشق نفسانی حالا نفس را زنده شدن آوردن اونجا تا این نفس کشته نشه از بین نره این انسان خلاص نمیشه و نمیتونه متوجه عشق معنوی بشه خب چون رسید از را اون مرد غریب اندر, اندر آوردش به پیش شه طبیب سوی شاهنشاه بردندش به ناز تا بسوزد بر سر شمع تراز این تراز ببینید تراز یه شهری بود مثل از اونور سمرگان اونور دیگه تراز شهری بود اونور توشستان معروف بود به زیبارویان خیلی دیگه اونجا این پرده‌های هایی که از اونجا می آوردن خیلی مرغوب بودن قیمتاشون خیلی بالا بود تراز شهری است در اونجا و این زیبارویان منصوب به تراز هم معروف بودن شم تراز یعنی اون دختر خیلی خوشجل زیبا ببین تراز را هم به فتح اول هم به چست یا هم تراز بونده شده هم تراز به مهم نیست حالا هر جور که بخونید. ولی اینکه, اینکه مهمه اینه که به زیبا به زیبایی اینجا شهره بوده همه میدونستن که اینجا جای جیبا رویانی <تصفيق> شعری داره در مده سلطان محمود اینجا شکر شاهید از تراز گذشت این تراز دورافیایی را میگه اون شهر تراز اون, اون سر بسلا ترچستان واقع بود شکر شاهید از تراز گذشت میخور از دست لؤبطان تراز حالا رفتی تراز را گرفتی این لؤبطان تراز هم در اختیار تو قرار می‌گیرند حالا ساقجریب میکنن برات <تصفح> ولی شعری که در تراز معروف همتون شنیدید اینه اون شعر رودچیه که از اساساً فوق‌الاده است میگه که روی به محراب نهادن من تشنه م صبح به چیه تو بشه پس می کنم بالروده چیه با. روی به محرام نهادن سسود دل به بخارا و بطان تراز ایزد ما وسوسه عاشقی از تو پذیرت نپذیرد نماز نماز می خونی ولی حواظت دنوال چی جایی دیگره و ببین دل به بخارا و بطان تراز چیزی شه در مخل نماز میشه یعنی همون مثله که اون عشق جسمانی در مقابل عشق معنوی عشق روحانی، عشق الهی به هر،, به هر اسمی چه بخوایید بخونید شاقید او را بسی تعظیم کرد تعظیم نه اینکه کرنش شد برای یعنی مقامش را بلند خیلی مقام بلندی فوراً چلیدهای جنزینه را در اختیارش گذاشت مخزن زر را به دو تصدیم کرد <تصفح> پس حکیمش گفت که سلطان مه اون چنیزت را به دین بده معالجه امراض نفسانی اینجوری زوریه معالجه امراض روحانی اینجوری زوریه باید ورف و مدارا نه اینکه گفتن الانسان حریص علامونه برای اینکه نشون بده که آقا این این صورت ظاهره و معنا نداره و ریشه نداره و حقیقت نداره این باید ببینه این در اختیارش قرار بگیره تا خودش تجربه بکنه رو ببینه که این نهایت نداره پایان نداره و شه به دو بخشید اون محروعی را جفت کرد اون هر دو صحبت جوی را صحبت مصاحبت هم نشینی به معنی هم است. جای مصاحبت به معنی هم نشینی ما که الان میگیم صحبت به معنی حرف زدن صحبتی نداشتی مثلا یا صحبتی نکردیم این البته، چون معمولا وقتی آدم به هم جمیرسه، یه حرف هم میزنه دیگه ولی اصل صحبت به معنی مصاحبه هم نشینیه دیگه. اون حدیث منصوب به پیامبرش بعد مولانا در هم شعر میده. چرا که از مصاحبه میخواد هم نشینی با خدا بکنه با اهل معنا و اهل دل. هم نیشینی بکند خب. مدت شش ماه میراندن کا 6 شش ماه برایشون فرزه گاهی شده تو تا به صحت آمد اون دختر تمام بعد از آن از بهرو اون شربت بساخت شربت معمولاً الان هم هست که اصطلاحاً آبا شربت را خوردی به بیمار میگه شربت شربت دواست دیگه دوا رو منظور این نیست که مثلا یه فرض کنی که نوشابه مثلا گول چیزی تاییه کردن بود شربت معمولا این چیز شیرین رو اینا نه شیرینی میزدن ولی دوا بود دیگه شیرینی بود از شیرینی بود که بتون اینا بعد از آن از بر او شربت بساد تا بخورد و پیش دختر می ببین مولانا یه شرح نمیده که بله توی این داروی ای زده بود که این دارو باعث می شود که این آدم این چچی میخوره روز خوره روز مریض میشه شه و از حال میره بعد از آن از بهرو شربت بساخت تا خود پس این نفس رام هم یک باره نمیشه باره کشت نفت رام هم, هم زور باید یواش, یواش یواش یواش مبارزه با نفت مبارزه خیلی ساده نیست یهو بخواهی که ورگش را بپید، تمام بکنی نه، یواش یواش باید بعد از آن از و شربت بساخت تا بخورد و پیش دختر میگود آف چم چم این داره اون زوذباش رو از دست میده کم کم برای دختر برای در مدت برایش خسته کننده میشه ملال آور میشه کم از اون چیز اولیش چشش اولیش و از اون تلالو اولیش از اولیش کم کم میشه چون زرنجوری جمال او اموند جمال ظاهری جمال جان دختر در وبال او نمان وبال یعنی عذاب این گرفتاری و چشم چشی که بود که خودش را به او وابسته میدونست دیگه نه سرد میشه چون چه زشت و ناخش و روح زرد شد اندک در دل او سرد شد خب مولانا تا اینجا مطلبش رو گفته و نشون بوده که خب عشق سوری، عشق نفسانی، عشق مجازی، عشق مادی عاقبت نداره. امروز هست، فردا نیست. نمیتونه دوام بیاره. چون میخواد می‌خواد نتیجه که عشق اون چتی را باید عاشق اون چتی بشی که این نمیمیره عاشق اون چتی باید بشی چه زوال درش راه نداره پراسیده نمیشه پوسیده نمیشه پیر نمیشه نمدرم از چیز نمیفته، از مود نمیفته، از نظر نمیفته نظرش اینه باید اون رو باید گسه آورده برای اینکه اون مطلب رو بپرورانه دیده پس اینجا یک خروجی خروجی نهم و تا الان هشت تا خروجی داشتیم از گسه این خروجی نه عشقهایی چه از پی رنگی بود اشک نبود به بعد ننگی بود از گسه زد بیرون دیده برای رنج رو این ای آشق رنج رو شدی این عشق نیست کاش کن،, کاش کن هم ننج بودی یه سری تا نرفتی بر وی اون بد داوری میگه فقط یه ننج نیست کاش ننج بود و اون عاقبت بد را نداشت بد داوری ببینید داوری منظور داوری در مقابل غذاست. و در عربی به معنی حکمه اینچه گازی را گازی می‌جن برای اینچه حکم می‌ده و این گذا چه می‌جن و قدر، گذاب حکم، حکم از علیه دیگه، حکم و مثل خداوندیه درباره اون بد، گذای بد چه می‌گوین؟ این همین بد داوری مولانا اینجا ترجمه چرده، گذای بد ما الان می‌دهیم، گذای بد گذای بد همه بد داوری از گذای سو سو الگذا این گذای بد بد داوری یعنی این دیگه این, این چیز برش به سرش نمی آمد خوندوید از چشم همچون جویو ببینید نهوه چلام چه جوری در هم ریخته خوندوید از چشم همچون جویو یعنی خون از خون همچون جوی از چشم او بیرون دوید خون همچون جوی آب از چشم او بیرون دوید میخواد اینجوری بزید ولی پیتونده عبارت را به این صورت خون دوید از چشم همچون جوی او دشمن جان به آمد روی او دشمن تابوت آمد پر او ای بسا شهرا ای بسی شهرا بکشته فر او ای بسی شهرا دشمن تاووس آمد پرو خوب برای اینکه پر تاووس خیلی قشنگه برای پر تاووس تاووز را می‌جیرند، حبسش می‌کنند، نیجهش می‌دارند، بعد پرش را می‌جنند تاووز بحاری را دنبار بچندند پدرش گرفتند و به کندی وقتی پرش را جرفتند، بینش می‌کنند برای این که صد دوم ای بسا شهرها بکشته فر او، فروزانفر مرحوم از این مصر را اصلا بهش نپرداخته. هیت اثر گذاشته است. خب اگر فر را ما شکوه معنوی و فر یزدانی یا چیزای یزدانی ما معنی بکنیم چه اینطور در نمیاد اینجا. ما فکر میکنم چه اینجا منظور از فر همه شکوه ظاهریه، شکوه و حشمت ظاهریه. شاه، زاه جلال شو باعش شده که خب آماده این چیزها قرار بگیره که بخواهم یاد ملشش رو بگیرن دیگه زاه جلالی نبود چه کسی بر درخت بیبرج سعی نمیزنه وقتی میان که بتونن این زاه جلالی داره ای داره بیام گارت بکنن و ببرن بخورن و جرنه خوب حال گفت من اون آهو این زبان حاله ببینید مولانا زده از قصه بیرونه گفت من زبان حاله اون نگفته مولانا میگه زبان حال مولاناست که زبان حال اون زرجر باشه گفت من اون آهو ام که از ناف من ریخ این سیاد خونه ببین ناف آهو جای خیلی ظالیبی نیز گایده تندگی ولی اون مشت در ناف آهوست برای سرش برای نم دارم. زبانش برای اعضای دیگر آهو چشمش خیلی زیباتره شش. هیچ کسی توجه به اون زیبایه های اصلی آهو نداره میخواد اون ناهو اون برای نافش گفت من اون آهو هم چه نافم؟ ناف من ببین مولانا دکت داره دارد از ناف من سیاد خونه سیادخونه صاف من ای من اون روباه صحرا چه چمن سر بریدندش برای پوستین برای پوست من ببین برای یه چیزی که در شمس تبرید میگه که روباه را پاهاش از خطرات نجات میده ولی او همیشه متشکر است از دنبش همیشه روباه ممنون دنبششی میکنه. می کنه <تصفيق> دنبش بایی خطر بوده برای همین دومش خواستن بگیرندش و این پاش نداتش داده ولی این به اون پا اصلا توجه نداره قیمتی براش گایل نیست عرضشی گایل نیست همش دلوافظ پوستشه ای من اون روباه صحرا که از چمن سر بریدندش برای پوستین ای من اون پیلی چه زخم پیلبان ریت خونم از برای استخان آه پیلی را چسی باش دشمن چه نیست چرا پیر رو میزنم میکشم برای همون پاره استخانی که میجن آد برای اون استخان برای اون پاره استخان تمام وجود پیل در خطری ببین این کنتراستی که گائل میشه مولانا اینجوری که برای اون برای اون چیزی که اصلا مهم نیست در واقع، در عالم واقع اصلا مهم نیست و اون این در خطر میاندازی آن چه کشت هستم پی مادون من ببین، اون چیزی چه مادون منی، پیه پستر منه مادون من یعنی اون چیز پست من اون جنبه پست من، اون چیزی که آنچه کشتستم پی مادون من می‌نداند که نخصت خون من بر من است امروز و فردا بر وی است یعنی این شطور در خونه او هم می‌خوابه اگر قرار شد این کار این شطور بیاد فقط خونتون من است چون این زایه چه است می رسیم به خروجی ده چه مناسب است با این حرفی که این که بر من هست امروز و فردا و برده است ببین مولانا هستن گسه ها را میاره برای خود نتیجه اون قصه نیست هست گاهی ولی عمدتاً مولانا برای اون فریه ها اونجا که از گسه جدا میشه و اون مناسبت های جزئی که پیدا میکنه و م... یا مناسبتی میتراشه به هر ترتیب چه بتونه از گسته بزنه بیرون و حرف خودش را بزنه و این از جمله اون حرفات هست اینجا زده بیرون در این مناسبت بر من است امروز فردا بر است این حرف را داره میزنه چه دیوار افکند سایه دراز باز جردت سوی اون س... سوی او اون سایه باز دیوار صبح چه میشه آفتاب میاد، شما ببینید که سایش خیلی بلنده ولی چم چم چم چم سویه جم میشه و زور میشه ببینید سایه جمع شده پای دیوار سایه نیستیجه ببین جد چه دیوار افتینات سایه دراز باز جردت سویه او اون سایه باز اون سایه ای که همجور بلند شده بود و جم میشه یه عاشقه جم میشه این جهان،, این جهان ببین نتیجه میشه. این جهان کو هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا ندا این کاری ما نداست ندا ندا در کجا؟ ندا در کوه این جهان کوه هست شما در کوه ندا دادی این ندا بر به سوی خودت این جهان کوه هست و فعل ما ندا آدم باید بدونند این را متذکر این نشته باشند این جهان کوه هست و ما ندا سوی ما آید نداها را صدا صدا این اکاسه نداست دیگه ما الان میگیم صدا این اکاسه صدا صدا خودش معنی این اکاسه. در جای دیگری مولانا میگوید این جهان کوه هست و گفت و تو از صدا هم باز آید سوی تو صدا به معنی همین پجواچ آواز این جهان کوف هست و گفت و گوی تو از صدا یعنی از تجواشش هم باز آید سوی تو این به گفت و رفت در دن زیر خاچ اون چنیزت شد عشق و رنز پاچ نفس کشته شد در آدمی چنیزک نماد آدمی آدمی خالص و تنها برای شاه چه شاه او را دوست داره او هم شاه را فقط دوست داره دیگه اون عشق سوری و عشق جسمانی از بین رفت موضوع شد بین عشق مردگان پاینده نیست زان مرد مرده سوی ما آینده نیست وقتی مرد رفت دیگه بعد نمیگرده. اشک عشق زنده در روان و در بسر هر دمی باشد به گنسه تازه تر اون عشق زندگی چه اون تر و تازه جیست مثل گنسه هر دم هر دم هر لحظه برات بتونه جلوه بکنه عشق آن بگذین چه جمله انبیا یافتند از عشق او کار و چیا کارو چیا یعنی دستگاه اشک اون زنده گزین خوب باقی است ممنون اپرا اشک اون زنده گزین زنده ای که فردا میمیره به درد نمیخوره اشک اون زنده گزین خوب باقی است چه شراب جان فزاید ساگی است هر دم این این جام هر دم هر لحظه جانفضای چج... از شراب جان فضا از سابی از هر لحظه تو را مست میتونه ویداره عشق آن بگذین چه جمله انبیا یافتند از عشق او کار و چیا کار و چیاه نه دستگاه یعنی دم و دستگاهه ما در... در لغت هم داریم در خود مولانا هم داریم در تاریخ هم داریم مخصوصاً در قسمت مازندران الان, چه الان هم هست چیاها، چیا چیا چیا یعنی بزرگ چرا لفتن یعنی بزرگ ولی کار چیا یعنی و دستگاه تو مگو را بدون شه بار نیست با کریمان کارها دشوار نیست تو مگو ما را بدون شهر مال را ببرد به ارواب نگو نگو آخو این آدم خاچی را چه عشق با خدا تو مگو ما را چون قبلا گفتیم بر اون اول, اول اول این بحث چه عشق اون کنابیش از خدا میاد پایین برای جذب این آدمیزاد برای بردن آدمیزاد ببین راجع به این زن زن مظهر این چیزه در اینجا گفتم چه مولانا اون زن را گفته آدمیزاد چنیز آدمیزاده اما نر و مرد، زن و مرد نداره، چنیز آدم و شاه او را دوست داره میخواد، او هم از آن شاه باشه شاه اصلا مالک اوست، شاه در قصه او را خریده دیشه، مالکه شده ببیند، وضعه اینجوری شما راده به این زن به عنوان مظهر زیبایی سوری خب ببینید ما نگاه های مختلف نجرش های مختلف داریم در طول یعنی ما یعنی آدمیزاد یه نگاه اینه چه زن را وسیله بقای نفس بقای نسل میدونه زن را فقط به عنوان این که شده برای بقای نسل این نسل ها، نسل آدمیزاد ادامه داشته باشه برای زن را از این نگاه نگاه میکنه از این ناویه نگاه میکنه ما یه نگاه دیگر تاریخی خیلی اصیل داریم چه میشه گفت نگاه مانوی چه از همین جا با زنبده میگه که برای اینکه در نظر او اینه که نور آمده در زندان ظلمت افتاده و این زنجی تا پاره نشه روح خلاص نمیشه نور در زندان و وسیله این این, این زندانی و این زن زنی بنابراین اون نگاه سرخصمانه و زن ستیز نظر نگاه مانیه چه برای اون گروه ستیگین و اصلا زن نا نا نا یه چیز ملعونی است باعث شده که این زندان ادامه داشته باشه از همون جهت مایه بقای نصر یه نگاه نگاه راهبانه بیشتر در نصرانیت و در نه در نصرانیت مدرن و در نصرانیت وقتی می‌جم یعنی از مسیحیت مدر، خود می‌خوام جدا باشید. از نصرانیتی چه راهب داشتن ریاضت می‌چشیدم سر درخت میرفتن میشهتن مثلا سر کوه میشهتن دیر داشتن بر سر کوه نمازخانه داشتن در سر کوه نه از این کسی نه اونها نه اونها اونها ایچه اونها نظر اونا یه نظر زنگوریزی داشتن اونا زن را به چشم وسیله ای امتحانی که خدا خلق شده تا تقواه شما را بیامون امتحام بکند آزمونه و باید ازش بر هزار بود باید خودت را دور نجاه داری این بود چه خب اون راهبام ازدباه نمی و نظر این بود او در عمل هزار کارهای دیگر می شردن. کاری ندارن ولی اصل نجرش این بود چه این خراسه ملوث میکند روح را و نباید از زن باید بگریزی زنگریز میگم من اون یه چی زن ستیزه هم احساس میکنه چه این زن ولی یه چی حالا میجه خیلی خوب خدا این را خرج شده برای من امتحان بکنه خیلی خوب من باید خودم را خیلی یه نگاه دیگری از مولانا اینجا میبینی. یا نگاه دیگری، نگاه ارفانیه، نگاه اینجا، این نگاه اینه که جاذبه صورت راهگشاست برای جاذبه معنوی جاذبه صورت یه چیز است در تو اون غریزهی را چه هست برای دوست داشتن و دوست داشته شدن اونو قریزه رو بیدار میکنه یه تکونی میده یه اونجا یه چیزی منطقه نباید در اونجا بمونی نباید این را در ببینید جلال جمال می‌گه که خداوند الله جمیرم و یوحب الجمال جمال زیبا پرستی زیبایی این جمال ظاهری شماره اون جمال پرستی را، اون زیبا پرستی را، اون رگ پرستی را در آدمی تکون میده. ده. متحد چیز م... م... حساس می حساسیت می به او. ببید مولانا تجوری چه نگاهی میکنه. کنه؟ می به دست پور خود شمشیر توبین می دهد. او در اون اصطاها شود شمشیر جیدت در غذا پهلوانیت میخواد فرزند خودش را تربیت بکند برای میدان زنج این شمشیر توبی میدهد بشه با شمشیر بازی آشنا بشه نه اینکه همیشه با شمشیر توبی بمونه و همیشه در این حالت بمونه برای اینکه اون شمشیر توبی رو کنار بذاره یه روز به شمشیر حقیقی بری در میدان برای شمشیر رازی به دست پور خود شمشیر توبین میدهد تا او در اون استاه شود شمشیر جیرت در غذا عشقی چه بر انسان بود شمشیر توبی آن بود به منظری شمشیر توبیه آن عشق با رحمان شود چون آخرایت ابتلا عشق زلیخا ابتدا بر یوسف آمد سالها سالها زلیخا در جیری یوسف بود شد آخرون عشق خدا می بر یوسف دفع یعنی پشت بر یوسف می کرد دیگه با اونداش رسید یکی یوسف را گذاشت یکی جاید یوسف یه جا نگاه اینجوری هم هست یکی حالا چچی نداره چطمان شما یکی از این راه ها را نگاه های مختلفی نگاه های مختلفی در تگ تاریخ به این گذیگه زنی هست و مرد هست و زن موتیبه بقای نسل به این چه دوری نگاه کردن ببین مولانا میگه مرد و زن در در ببین در نزدیکی مرد و زن مولانا چه میبینه مرد و زن چون یک شود مانندات میکنه مرد و زن چون یک شود آن یگ تویی خدا رو در چه میبینه مرت و زن چون یک شود آن یک تویی چون یکی هم نیست شد آن یک تویی ای. که نمی‌بینی نگاه هست نگاه بله اول بسی این دسته بدون توجه به این ظرافت ها و به این تفسیرها، ها به این نماد ها توجه بدون این ناد ها فادی سرگه آدم می خوونه یاد میشه. بانه آن چهکشتن و حالا موللا ها به سر تمام کرد نشسته که تعاتی میکنه خارج از سه خارج از که سه بکلی بیان آنچه کشتن و زر دادن مرد ججره اینجا یه بحث دیگری مرونا میخواد مط بکنه. می‌خواد بگه که اون ترش ما بد میدونیم، اون ترش ما خوب میدونیم، بد است و خوب است برای ما در عالم واقع نه بد است و نه خوب است. اون نیچه کتابی داره اسمش هست اوتلاتو مال اپیا در ورای نیچ و بد. و ما اینجا در عالم انسانی قوانینی که داریم، شرایطی که داریم، چه قوانین الهی، چه قوانین بشری، این قوانین برای اداره زندگی ماست. و در این تار اینا درسته باید حتما روایت بشه. ولی خارج از این چه هر اینا معنای خودشون را دست میدن ببینید بحث می‌کنه بیان آن چه کشتن و زهر دادن مرد زرجر به اشارت الهی بود نه به هوای نفس و تأمل فاسد آدم کشی؟ به قصه جرچه در اون قصه اون نماد نفسی ولی در خود قصه، بالاخره یه چیزی هست جی اینا تعملات مولاناست در پیرانون قصه که را گفته تمام کرده، حرفاش زده بعد میشینه برای یه تعملات کشتن اون مرد بر دست حچیم نپه امید بود و بیم او نکشتش از برای طبع شاه یعنی از برای خوشحاین شاه تا نیامد امر و الهام اله آن پسر را چش خزر ببرید حلق سر اون را در نیابد آم خلق آنچه از حق یابد و وحی و جواب هر چه فرماید بود این سواب آنچه جان بخشد اگر بخشد رواست نایب است و دست او دست خداست همچه اسماعیل پیشش سر بنه خندان پیش تیغش جان بده تا بماند جانت خندان تا ابد. همچه جان پاچ احمد با احد آشگان آنجه شراب جان چشند که به دست خیش خوبانشان شاه و خون از پی شهوت نچرد تو رها کن گمانی و نبر تو گوان بودی چه چرد و لودجی در صفا غش چه هلت پا لودجی بهران است این دن وین، جفا تا برارت کوره از نگره جفا آن است امتحان نیچ و بد تا بر سر آرد تا بدوشد بر سر آرد زر زبد جرفتاری های خط فارسی است آرد و آرد چون روشته میشه چی؟ من <تصفيق> جر نبودی کارش الهام اله او سجی بودی دراننده نشا پاچ بودش شهوت و هرس و هوا نیچ چردو لیچ نیچ بدنما جرخزر در بحشش چه چست صد درستی در شکست خر هست و همه موسی با همه نور و هنر شد از اون محجوب تو بیپر مپر آن گل سرخ است تو خونش مخان مست عقل است و تو مجنونش مخان جر بودی خون مسلمان کام او کافرم جر بردمی من نام او می بلرزد ارش از مده شگی بد گمان از دز مدهش متقی شاه بود و شاه بس آگاه بود خاص خواست بود و خاصه الله بود اون چزی را چشت شاهی کشد سوی بخت و بهترین زاهی چشد ندیدی سود او در گهره او چای شدی اون لطف مطلق کارجو. ببینید اینجا یه مطالبی در همه اول گسه اشاره داره به گسه خیر، چه گفتیم چه شرای. و گوانین در چارتوب اجتماع معنی داره سی در ورای اینا بنجره خوب هست و نبد و ما این را در قرآن در قرآن یکی از سوره های جالب قرآن البته توان سوره های جالب از این نظر را را سوره که اون آقای یونگ یه رساله خاصی داره درباره سه تا قصهی که در این صوره چهفه است این سه تا قصهی خیلی مرموزه و یونگ در بارهش خیلی جلب نظر یونگ را چرده راجب این یکی از این قصه ها قصه خضره البته اسم خضر در قرآن نامده ولی قصهش هست قصه چه شمیره و یه چیزهایی هست تفصیلش رو بنده نمیتونم در این زلسه بیرم وارد بشم و علامتی هست رمزی هست وقتی اون رمز اون رم اینه که ماهی خشکی که آورده بودند بخورند در راه خضر با یه چسی با یه چسی نمیجه در قرآن اسم نمیبره نه از خضر و نه از اون چس میجه لفتاه به اون زوانه چی که باش بود نه از اون زوان اسم میبره نه از اون خضر ولی فقط از موسا اسمی بره چه موسا به اون زمانی که همراهش بود باش را می رفتند، سفر رفتند و تا رفتند چنار دریا و بعد اینا غافل شدند و اون ماهی خوش که آورده بودند بر سفر دخورند اون ماهی یهو زنده شد و رفت در دریا و خب این موسی اینو ندید ولی رفیقش دیدن رو سر دست نه بود رفتن یه تن فرسنگی بود سم منزلی جلو تا رفتن موسا گوش شد یادش افتاد که بالاخره ماهی آورده و آو گفت کو آوا چی یورو گفت ماهی رو بیار بخوریم گفت بابا ماهی ماهی نمیدونی چی شد چی عجیبی بود من بهش گفتم ماهی مرده زنده شد و روش چششی جت به دریا کو کجا بود؟ گفت بله اونجا برجرد برجرد معلوم میشه که این رمزی بوده و بر میگردن در اونجا در اونجا این آدم رو که به عنوان خضر ما میگوییم اونجا اینو پیدا میکنن میبینن چیه چی اونجا هست و موسا میشه که خب من دنبال تو میدشتن باید او میشه که موسا میشه تو تاب به صحبت منه نداری تو نمیتونی با من بیایی تو برو وال کار خودت. میگه که نه من با شب که من دست بردار نیستم من باید حتما با تو بگم. میگه که خوده استور و این کارو میگه بی شرمتونه که هر چه دیدی از من دم بر نزنی و یاد نگیری. حرف نزنی اعتراض نکنی. برو خیل میشه. خب راف دادن، با این گول و قرار راف دادن تا رسید به جایی و این یه چشتی رو شکست می زد یه چشتی را می در چشتی رو شکست خب اون صابه اطلاعش آقا داخل مرد صابی چرین کاره کردی؟ کار درستیه فلانو خب این اول بار گومجه نگفتم چه تو نباید عرف موسا ها توم میکنه چه دیگه این بار حرف نمیزنن و فلال رو میرن پیاده میشن در اون جدیده اونجا میره یه چی بود و جوونه رو میکشه باز این ف... داد و گالش میره آمان چه آقا ا اگر تتا نفسن ذچیدجهیه آدم بی گناهی را کشتی تا این چه کاری بود کردی؟ گفت مجه چه نباید از من حرف نباید بزنی و خبانه حالا این کار را نمی بعد باز رفتند و یه جایی یه دیواری افتاده بود این شروع شد این دیوار را بنایی شدن و دیوار را برپاه شدن و, و خب موسا هم زیر دست این لابود کار می شده خش می بود، و جر می و و خسته شده خب این راه شد چشیده چی بره گفته خب اگر یه دست بود چیزی آخه این همه ما کار شدیم گوه ها دیجه تمام شد دیگه این بعد از این دیگه غیر ممکنه با ما با هم باشیم و این دیجه سبون بار شد و میاد و میجه حکمت این کارهایی را کرده چه درست هر کچه کارش برخلاف قانونه برخلاف شرعه هر چه هر کاری خضر برخلاف شرع بوده برخلاف قانون خدا وفی نمی‌داد و این موسی به عنوان پیغمبر نمی‌تونست اینا را قبول بکنه خب این یکی از قصه که در سوره چهو آمده اون اسم اون پیغمبر رو خضر رو گفتم که نه ورده در قرآن در قرآن از این اسامی پیغمبرهایی که یه خرد مرموزن در صحبت شده ما یه یسع نامی داریم و اسمایل و الیسع دو بار نام یسع آمده و اسمایل و الیسع و یونس و لوتن و کلن فضلنا علالآلمین گفتن این یسع همون خضره باز یک جایی دیجا یک به نام الیاس حرفش آمده در قرآن، اون سه بار از الیاس یاد شده در گرآن و این نه الیاسه لمن المرسلین گفتن که این الیاس خیده بعضی از این عرفای ما مانند عبدالرزاق کاشانی این آمده میگه جه خز این هر دو یکی هست خیز چنایه است از حالت بست و گشایش و الیاس چنایه است از حالت قبض و جرفتجی یه دیوتند یاسه همون حالت جرفتجیه اون یکی الیاس حالت گشایشه ولی عبدالرزا و کاشانی می جهد که نه این هر دو یکی هر سه یکی هند خز همون یسهه، یسه همون الیاسه اونتا الیاس یسه اشاره است به حالت از خز و اون یکی اشاره است به حالت دیگری از خز. برای که اینا لیم الله به اون چیزهایی که شنیدید دیگه که اینا گاهی در حالت قبض و گاهی در حالت بست هم حالت کشایش و حالت قبض حالا آن پسر را چش خذر ببرید من نمیدارم این را چرا خذر خوندم تو ما یه خزر داریم و اگر دو تا التگاه ساچینه این خذر یا خود ده. مثل در ترچی هم این دوریه التگاه ساچینه نداریم اون وقت حرچت میدیم یه چی را خوب گایدتاً باید خزر بجیم ولی اینا چی شده در میشه خزر گفتم مثل سخن که مثل سخن با وقتی اینجای سخون حالا نمیدارم میشه کاریسی بیکنم اهل زبان نمیدارم حکمتی دارد من. اون پسر رو چش خزر ببرید، حلق سر اون را در نیابد آمه حلق اون فنتلغ او حتا از الگ یا غلامن فقتل هو در قران هست این رفتند دید ای جوانی را دیدند و اون همراه او خضر همراه موسی چریفتن کوش قال ات قتلت نفسا زشیتن بغیر نفسن لقد جئت شيئا نکرا این فزاحت آوردید یه فزاحت بار آوردید ای آدم بیگناهی را زدی کشتی موسو شد یه چی بود آن پسر را آشش خذر ببرید حلق سر اون را در نیابد آم خلق آنچه از حق یابد و وحی و جواب هر چه فرماید بود عین سواب آن مولانا در یه جرم بین این داره کوزه جریست چه کوزه جریست کوزه جره ایست، کوزه جره در این کوزه جره در، چیز این زاومه لطیف کوزه جره ها میسازد هر لحظه و میشند اینا را و اگر او میسازد او خودش هم میشند کوده کوزه ماله کوزه را همون میشند، همون میسازد هر لحظه صدها هزار آدم به وجود میاد سطح آقای آدم میمیره چی میمیره؟ الله یه طفل انفرز خدا می کشد این اون چه زنده می کند همون می کشد جی به این بحث گشتن و ایلان در درون جامعه انسانی معنا داره در اونجا معنا داره معنا نداره. نداره اون کوزجر کارش اینه هر لحظه صد هزار کوزه میسازه صد ها کوزه میشنه می کارشی آن که جان بخشد اگر بخشد رواز نایب است تو دست او دست خداست همچه پیشش سر بینه اونجا قصه اسمایل هم هست در اونم با با قانون نمیسازه یارو خواب دیده چه پسرش را صبح ضبط میکنه، سرش میبره، می‌بره آمده که سر اسمایل را یا اسحاق را بب... ببره و او هم آمده و تسلیم شده و خوابیده که این کشته بشه قربانی بشه، سرش بریده بشه نه کار او با شر درست نکارین این نه کار بابایی که میخواد سر بطهش رو بکنه و نه کار بطه‌ایی که تسلیم باباش میشه سرش رو ببرن هیچ کدوم با شرط درست نیست با قانون درست نیست ولی خب اینا نست قرآنه در قرآن هست اینا یعنی در ورای این قوانین شرعی و قوانینی که ما در عالم باید رعایت کنیم و باید رعایت کنیم در ورای اینها یه چیزای دیگر هست یعنی این خوب و بد، این حلال و حرام در داخل این چارچوب درسته در خارج این چارچوب نه حلالی هست، نه حرامی هست، نه بدی، نه خوبی لیشه این در ربشه است، سباهن ولا مساه، اونجا نه شب هست، نه روز هست اونجا یه چیز جریست، این حلال و حرام برمیفتد وقتی که این دنیا تمام میشه وقتی شما و ما هممون لبهش گفتیم ندای مرج را دیگه حلال و حرام تمام میشه عمل عمل یا بکنه یا نکن دیگه بکن نکن تمام میشه بکن نکن تو اونجا که من زنده هم. تو اونجا زندگی ادامه داره این عمل بکن و نکن حلال و حرام تو اونجا ادامه داره در اون, بر اون بر ما نمیدونیم چیه اون میدونیم چیه ولی این قوانین در اونجا دیگه کار برد نداره همچه اسماعیل پیش از سر بنه شاد و خندان پیش تیغش جان بده تا بماند جان خندان تا ابد همچه جان پاک احمد با آشگان اونجه شراب جان چشند چه به دست خیش خوبانشان کشند شا اون خون از پی شهوت نچرد تو رها کن بعد و نبرد نبرد یعنی یک و دو چردن جدل چردن تو گوان بردی چه چرد آلودجی در صفا غشت چهی هلت پالودجی این اصلا پروسس پالایش در پالایش آلودجی پالایش برای جدا, کردن از جدا شدن از آلودجی است این عوضی نجیز آن است ریاضت و جفا تا برارد کوره از نگره جفا سیم را نگره را چه در کوره زوب می‌کنی برای اینکه هر چیز زاید داره جفا چف دیگه هر چیز چیز زاید داره اونا بیندازه بیرون بر آن آنست امتحان نیچو بعد تا بدوشد بر سر آرد زر زبد عجرزر را می‌دوشانی برای اینه که زبدش یعنی چفش بیرون بره جر نبودی کارش الهام اله او سجی بودی دراننده نشاه پاچ بود از شهوت و حرص و هوا نیچ کرد و لیچ نیچه بدنما مانند کار جر خضر در بحر چشتی را شچست، صد درستی در ششست خیر هست وهم همه موسا با همه نور و هنر شد از اون محجوب تو بیپر مپر میگه موسا با وجود اینکه پیغمبر بود آجه شد از دریافته این معنا پس تو چه موسا هم نیستی؟ تو دیگه خیلی بلند پروازی نکن که همه چیز را من باید بدونم همه چیز برای, برای من روشن باشه خیلی چیزا هست تو نمیتونی برای روشن نخواهد بود برای روشن نخواهد بود و روشن نیست تو بی بیپر مپر مرغ خانه با هما پروا مکن ببین از این چیزای باز مرونه پرواز را چهت پرواز <تصفح> گفتم برای مرونه اصلا مرغ خانه با پرواز مکن پرنداری نداری نیت سهره مکن چون سمندر در دل آتش مرو و از مریت و خیش را رسوا مکن درزی درزی خیاط درزی ها آهنگری کار تو نیست شمس تبریز در مقالاتش میگه درزی اگر آهنگری کند ریشش بسوزد باید نه بلد نیست که درزی آهنگری کار تو نیست تو ندانی فعل آتش را مکن آتش زبانی داره باید باشی آشنا باشی اول از آهنگران تعلیم جیر و نه تعلیم تو آن را مکن چون نهی بحری تو برغ بحری تو برغ دریا نیستی تو نهی تو آن تو بهرندر مشو شو دست موز و غره دریا مکن ورکنی پس گوشه چشتی بگیر دست خود را تز کشتی وام مکن اون گل سرخ است تو خونش مخان مست عقل است تو تو مجنونش مخوان جربدی خون مسلمان کام او کافرم گر بردمی من نامه او ظاهر قصه برای این چه خلاف اینه. تو به ظاهر نگاه نکن دیگه من مقصودم یه چیزی دیگری است میبلرزد ارش از مده شقی من چطور قصه این آدم شقی رو که آدم میکشه به شما بجم من این کار رو نمیکنم شاه این را همین زودی کشته بود همین ظاهر امر چه نشون میده پس این یا شقی بود آدم با شقابتی من نمیباید حرفش بزنم بدگمان جرد درز مدهش متقی اگر من مدح. یک آدم شگی را بجم یک آدم متقی بدگوان میشه درباره من یا برخلاف یا اگر مده شگی را بجم عرش میلرزد و اگر مده متقی را بجم اون متقی بدگوان میشه چه چرا داره از من مده من رو چرا چه خبره چی شدیم هر دو جور میشه خونده را می زد اش از مده شقی بدگوان جرد از مدهش متقی شاه بود و شاه بس آگاه بود خاص بود و خاصه الله بود چه من گفتم این نماد خود خداست در این وصه اون کسی را چنین شاهی کشد توی بخت, سوی بخت و بهترین بهتر جاهی چشد گر ندیدی سود او در دهر او چای شدی اون لطف مطلق در من این سبیت را میخونم که جلسی امروز خاتمه پیدا بکنه بموند برای حکایت توتی چه می لرزد از اون نیش حجام مادر مشفق دروندم شاد بچه ها را قدیم می بردم برای حجومت من یادمه شما یاد نی در هر محلی خانوم هایی بودن متخصص این کار و خب اینا حجومت می گرفتن و برای اینکه این خون ناسالم بره بیرون قدیم اینجوری فکر می‌شدن که در تن آدمی همیشه یه مقدار خون ناسالم جمع میشه. و این را با وسیله اون حجومت باید جریف بیرونش و این مادرها برای دلسوزی بچه را بر می‌داشتن، می کار مادرها بودن اون حضومتسی ها معمولاً حضومتسی مردم داشتیم ما ولی معمولاً اینا این خانم ها بودند بچه ها را پیش این خانم ها و مادره و خب حضومتسی اول باید چیزی نگه داری می‌مچد این را که میشه بعد با اون نیش می‌زنه و این چه خون در بیاد دیگه به این تصویر می‌کنی مولونا را اون, اون منظره را که مادره بچهش را آورده بچه می‌لرزد از اون نیش هدام بچه می‌ترسه مادر مشفق در اون دم شاد کام، مادر خودش گرفته آورده نیم‌جان بستاند و صد دهد آن در وحمت نیاید آن دهد تو قیاس هست خیش می‌گیری ولی که دور دور افتاده ای بنگر تو نیچ حالا بمونه انشالله برای جلسی و اینه اگر خدا خواست و عمری بایی بود باز نیایی تو دنبال